سبحان الله و عبادالعالم، و صلّى الله علیه و سلم و رسول الله، و آله الصّيبين الطاهرين المعصومين واللّه الدائم على الدائم، أجمعين اللهم اعفنا جميع المسلمين ورحمنا برحمةك يا رحمة رحم رحمة. از شد به هفّسیره آیه و و تجلی به های الحکم. یک روایت واحده داریم که دیروز توضیحی راجع بهش داده شد البته بعضی از آقاها بعد از ذکر اشکال کردن که این معنا خلاف ظاهره بله همینطوره که فرمودم اون معنایی رو که دیروز عرض کردیم طبعن خلاف ظاهره لاکن خب با ظاهر حدیث و آیه نمیخوره مزاتن به تشریش مخفی که داشت وقت ممکنه که اگر بخویم به ظاهر حدیث اخذ بکنیم اون حدیث مبارک رو جور دیگی معنا بکنیم اون حدیث رو و اون قاله آن هدیه بود و آن اینطور قال هو آنیاء لمرجل ابرارتیم بود. فکر می‌کنم کتاب پخته‌شو هو آنیاء لام یعنی مورد آیه جایی است که آنیاء لمرجل مرا لعذب کرد. در اینجا همون راشیه. آن همون که تیکی دعواداره ترقه دعواس. آنیاء آننهو ظالم و ناقصی. این شخص می‌شناسه خودش رو زد میدونه که خودش ظالمه. و این عبای رو که ادعا کرده مال او هست مال او نیست مال دیگریه مثلا یا این کتاب ها رو ادعا کرده خود شخص میدونه فیحکم و لحول قاضی لکه قاضی به نفع او حکم میکنه میگه این عبا مال توست فهوه یعنی اون رجل اون شخص ایر و این دیگه معذور نیست شاید یک نوع حالتی باشه که الان هم ادعه از عبام دارن کار باطل رو به این قضای نستجی رو به الله میبرن و قاضی حکم میکنه خودشون هم میبرن باطله میگن یعنی آقا قاضی گفته و در مباحث و اصول هم ما متعرض شدیم که این سنخ از مباحث خیلی مشکله یعنی تفسیرش هم به لحاظ قواعد خیلی مشکله مثلا درباب قضاوت وقتی قاضی حکم میکنه به نفع یکی این چه کار میکنه آیا یک حکم ظاهریست یا یک حکم واقعی است که ترکیب آثار واقعاً داده میشه. زواهرش اینه که حکم واقعی است. واقعاً پس از اون ور در خود راته پیغمبر دار که و لعل لبعضاکون یکونوا علهن علهن در اینجا معنای خوش بیانتر خوش تعبیرتر چون لهن در واقع اصطلاح به معنای غلط لفظی به کار بوده میشه لهن فی کلام یعنی تلعث به کار بره سلامش ملحونه این جا علیه هند آنی عفسه اوجع. علیه البعدكم یکونو علیه هند من بعد. و این ما عرض بین کمبل ایمان و بین آن، فهمن قدریت لهو بش له بشی و ما او لیس ده. فا این ما من النار. یعنی اگر میدونه دونه باطله، این در حقیقت از او تن تاثیر نزده. خودش بیدونه از یکی از مشکلات انصافان هم جمعش خیلی مشکله جمع بین این دو تا مطلب که از یک طرف بگیم به دنبال واقعیات باشیم از یک طرف بگیم حکم واقعی با قضاوت ثابت میشه اما هم در حقیقتی مثلا فحابه غیرمعذوره این معذور نیست یه اخزیهی در این که مثلا این کتابی که محل کلام بوده که پول داده به قاضی زال الذی و اگر این باشه مناسبش اون قضیه که در کتاب تهذیب اومده ظالک الذی قد حکم الله اذا کان قد علم ان نبو ظالمون اگه خودش میدونه که ظالمه به مجرد حکم حاکم عوض نمیشه به مجرد اینکه حاکم یک حکمی بکنه این مطلب عوض نمیشه مطلب واقعیتش محفوظه پس این آیه رو طبق این تفسیر این تفسیری که دیوز ارز کردیم که خب خلاف ظاهرم بود قبول داریم بر به حال قاضی طبق این تفسیر بر به حال مدعی کسی که رشو میده راشی نه مدکشی این تفسیر خوب الرجل و ان یعلم الرجل انمو ظالمون با اینکه میدونه فیح کموله حال قاضی کاب خب طبیعتا در اینجا ای چیزی مزمره یه پولی به قاضی داده که به نفع او حکم بکنه و, قاضی. و هو غیر غیرمعذوره امام فای این معذور نیست و نه قاضی حکم کرده نه بگه آقا قاضی در سال قضایی به نفع من حکم کرد به نفع تو حکم کرد و تو میدونی به حق نبودی این برای تو جایی نسید فی اخذی هیزاله الگه قد حکمده از کلم این قد در کتاب ایاشی به آمده و در کتاب ترزیر قد آمده. این معنا باقدر بهتر می‌خوره به معنا نذره الا کان قد علم ظالمون اگر خودش میدونه بازور نیست این الا علمه انه ظالمون دو مرتبه تکرار شده احتمالا ناظر به با آیه باشه و اگر این جور باشه که ز... این که خب ظاهره این نسبتا معنای ظاهری حدیث ما باید بگیم که این ببینید كتب الی ساله من تفسیر قولی ایت و لا تأکل و اموالکن بینکن به الباطل و تدلو به ها الال حکام تو اینجا نوشته ظاهرا اگر اینجور معنا بکنیم حدیث رو بقیه آیه هم بوده لتأکل و فریغم من اموال ناس و انتون تعلامون ظاهرش اینه چون این کلام اما و غیب و معذوره فی رال کلدی این میخوره به تکل و فریقم به امبال ناس میکنه. <تصفيق> و بعد شما اگر جا ت کنید اما دومد اضا خقل علم معن وظالمون، آیه مبارم این طوره تکل و فرق من امبال ناس بل علم و انتمم تعلممون به نظر من توی صبحال که دیروز اون توجیه کردیم اگر سوال تا نصف آ باشه. ظاهرا به قریه ذ بقیه آیم ذکر شده. ز و فریق انبال الناس و انتم تعلّمون، ببینید و انتم تعلمون ولی اون لاین‌هم تازه اینجا گفته سی از آل مردج، انجیل مردج. الان در آخر حذیس داره اذار کنه. بعد آلیم الان نهوزالمون. البته اگر بنا بود دقیقا تفصیل ما مکه. اصلی جوهرش حرمت نیست برای امام داریم می‌گوییم مثلا اضافه من قدعل منه واسمون لتركوا فریق من انبار الناس به و انتم تعلمون اگر این باشه یعنی بگیم این آیه کامل نوشته بوده جواب امام هم ناظر به کامل آیه است دقت بکنید و وقتی در حیض مسئله رشوه رو امام به گفت که ضمنا از آیه استفاضه کرده چون لتاكلوا فریقا من اموال الناس له این اسم چیه این گناه چیه لتاكلوا فریقا من اموال الناس درست به له اسم این اسم و گناه ده اینجا چیه ارزش ها زورباشی غصب ها دقیقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس پس امام میخوان بفرمایید آیه مبارکه راجع به باب رشوه و غصب است ال حکام ال قضا سمه که پس در حقیقه امام طبق این تفسیر از بکه این مناسب بود که آیه کامل ذکر بشه که جواب امام هم مطابق در بیاد با این ظاهر هم میخوره مشکل نداره وقت حکمه اولای چون گفتن الحکام الحبازات خودش در میاد که باب غذابت و باب رشوه است، و نقطه دیگه در میاد حرمت رشوه از باب تکلو و من انبار ناس به ازم و انتون تعلامون توضیحی بشه که چطور این ذهن که دیروز از کردن مثل اکلو خریفا من انبال ناس این برش مربوطه اول یه طرح سوالی بشه و یک بحثی مطرح بشه ببینیم آیا نکتهی هست و اون نکته رو میشه در کلمات امام توضیح اون نکته که قرار از ارز کنم که یک اشکال معروفی هست که دیروزم اشاره کردم. که این آیه مبارکه مربوط به باورش نیست، این کلر آیه مربوط به باورش نیست. این اشکال از در کلمات مثل مرحوم استاد در بستر گذشته اش کردیم. در کلمات مرحوم استاد هم آمده. ایشون در همین آلمه از مسواه ناریم کنم در مسواه الفقی، فقاهه در صفحه جبیکی که داریم ماه یکی م ممکنید شار از همین چاپ نظر چاپ چاپق میشه خرانند ب انلایقال انعایهنمل نما ما و این اشکال و قد الله و تاللافی ها ان ااعط مقضا نطک امواالقلات و حکاماکل بقیه به ثمال دوان و ال حاضات به یه عجنبیتان ان رشه این ااشتال بعد اشکال, اشکال خوبوضع خب اش شوااضحه چرا چون داره لا تعک و امواکن بینکن به باتل و تدلو به این مرال، ایلال حکام لتعکد و فریق این فریق یعنی قسمتی میگن از ظاهر آیه اونواله که اینطور معلوم میشه خب دقیق رو مورد آیه است که یک مالیه انسان یک مقدارش رو به حکام میده در و نه قاضی آنه حاکم سلطه اجرایی و سلطه قضایی یک مقدارش رو به حکام میده در اون مقدار دیگه تصرف میکنه ببینید و تدلو به ها الالحکام لتاکلو نام داره فریقا یعنی قسمت دوم رو قطعه ای رو شد چیه؟ معنی آقای ظاهر آقای مبالکه اینه که یک مالی مطرحه این مال رو انسان یک مقدارش شد به حکام میده حالا حکم هرچ مناده به حکام میده تا برای در یک مقدار دیگه تصرف بکنه بگیر تصرف عکل بکن پس آیه موردش در جایی فرض شده که انسان در اینکه بتواندن در مقدار دیگر از ما تصرف بکنه یک مقدارشو به حکام بده و این طبعا غیر از رشتو اینطور نیست. پس این, این تنازه دارن در یک ساختمانی انسان میره به قاضی فرصوی یک میدیون تومن میداره نبو حکم کنه. نه اینکه بخشی از ساختمان رو میدیفه ظاهر آیه ده تا اونو یعنی یک بخش مال داده میشه برای اینکه بخش دیگرش تصرف بشه اما تو رئشی نیست یک بخش دو بخش نیست شما پول میگیم که قاضی به نفع شما حکم میکنه راستون ساختمان هست اختلاف داریم از ساختمان چیزی الانم الانمتر هستن روی متراژ دوستا شما میگین کار میکنه مثلا زمین اختلاف داره میگین برای یاد نمیه پنجم زمین مال ما. فرض کنیم که نه. ظاهر آیه مبارکه رشوه یعنی ظاهر ای نیست انسان یک پول بده پس در باب رشوه اینطور نیست که طریقا من اموال ناس کل اموال ناس نه طریق نه قطعه بحث قطعه نیست این نیست که یک قطعه شو بده به حاکر توی یک قطعه دیگه تصرف رو کنه لذا آمدن گفتن که مورد آیه مبارکه در باقع اموال وداعه خوبی که از کار که سابقا زیاد داره و خیلی کم شده با امدن بانغ ها و چهات دیگه و وضع سفر کسی که میخواد سفر بده، یه منظرامالش رو پیش کسی امات میذاه بر انکار این کار میدون بود از اونشون این کار نداشه. مقصاوارد مثلا که خیلی مرده احترامشون بود مثلا کنیز خاصی داشت غذا ای این دسته نفر بهقول خودشون مسیدا یه میذاد که برمیگاشون گفت نه هیچ چیزی شما نبود دروغ است افتاکی زن مرده بود, بود دیگه زوجی که نبود یک کلا شری بر خودش سر گفت دقیق کردین یا بدیعه یا بدیعه بوده یا اموال ایتام بوده توی بخش ایتام ارز کردن یکی از اختلائات بزرگی جاهلیت از این شعر تاریخی چوشه وقتیه تصرف در مال ایتام یک بحثی دیگه برای خودش که مثلا شخصی کود کرده زن یا بچه بوده اینا میآوا داخل بایه یک دستگاه قضایی می سافن مثلا اموال یتیم که 100 هزار هم بوده 20 هزار تا شده به قاضی میذارن تاکل و فریقا بن اموال الناس تا اون 80 تا دیگر رو روشن شد اینی که آخوئیه آخوئی توضیح کافی ندادن توضیح کافی به نظر من روشن شد چون در اینجا نداره تاکل و اموال الناس تاکل و فریقا این تاکل و فریقا یک چیزی در تقدیر داره یعنی یک فریق رو به اون حکام دادیم یک قسمتی از این انوار رو به حکام دادیم تا اون قسمت دوم تا لتر کلو. لام لامن علت رو لتر کرو فریقم من, من انوار نامست وقتی این به گفت رشته نداره شما در رشته برای از آمدهیم میدونیم ظالمان هستیم این ساختمان این طرف ما بگیریم یه منی ایمان بشینیم به نفع شما این این اینطور نیست بلزا گفته شده که آیه نما نظر که خصوص اموال بیتا ما و الدیه و اموال متنازع دی معیارشان این نیست که راه و اگر تا ما معیار اینه یک مالی که شما میخواید نصفش رو تصرف بکنید نصفش به قاضی از راه سلطان ولیزا احتمال داره که حکام درجا اعظم باشه از حاکم و قاضی چرا چرولی شده کل مجلس مثل نماز قایر باشه ها حالا این سابه اجازه فرمتون من ارزمم فنهو یقال این اشکال رایت ترم آقای خودی خیلی واضح نفرمو گویده من فکر میکنم واضح تر براتون ارزم کردم فنهو یقال نهم از کس رسل شریفه به کل واحده در امور المذبوره به بدایه و انوال ایتام شده بله الا انهاته تفاسیر من بیان بیانه مثلا اینا مثلا اینا وشوند ولقرآن لا یختصا به ولا به نصداخه بل یجری که جرگ شمس اینجا کاف نناشته مجرد شمس دارم در روایت اینطوره این نهاد القرآن یجری مجرد شمس دارم کما دلت علیه جمله من روایت تو من زیاد نیست یکی یه دو یکی چاد باشد. تو ذهن من هست من هم کامل نیست و قد ذکرناها، ها فی مقدمات تفسیر که بیان باشه چاب شده بله. الا امّا في مجموعه به ها یعنی عرشه. من که داره سهها پیشانه ولی نمی نیست. حالا شفه بر یعنی هم استاد هم به اصطلاح انهو یغال فقدر یغال شد خیلی توضیح نده هم جوابش خیلی واضح نبود ولذا با دو مرتبه این سن مقدر یتبه هم انال آیه لیست لها بلیست لها لیست لها تعرضن لخکم رشد فی ان قوله تعالی و تدلو بها الالحکام ظاهرون فی انال محرم هوا لعدلا با اموال ناس الالحکام لیستعین به هاولا الاور اکثر فريق من آخر من است و من المعلوم ما و هر من مال او به و باطل. این همون اشکالی که من به عبارت حسین گفتم میدونی چون چرا تکرار کنم دارم ایشون که نسبت مقرر و فی انرى ان رشوت و اللغه اعم و منزله كما تقدم فلا بر جل تخصيص قسم خاص این روشن نیست حالا عرض میکنم این اشرا جواب اول ایشان روشن جواب دوم و ثانیا لا ظهور فی ایت المبارکه فی کون حکام مال الغير و طلبوا اله حکام به اموال الغير بلکه اعم منزله اما مال خودش باشه یا مال دیگری باشه او ظاهر اتان فی کامل متفق مال الموتی، اون چی که داده مال الموتی باشه. و مجموعه قول انتها هر مترشیه، به این جمله این دادگی خارشه این در چه کوستار چه که نه سر سر باشه و به جمعه حرمت رشه. بعد این جمله هر مترشیه، ولی این هر مترشیه من زرویات لب است. اما این اشکال با جواب دادنشه، این اشکال رو حلش بکنه پس معلوم شد، از به نظر من چلون استادی مادر اجبار داره. متاسفانه اجمالش هم در بیان اشکال هم در جوابیست که ایشون هرون فرمون این اشکال پس اشکال این شد لطه اکلو فریغم من اموال ناس به از این فریغ معناش این است یک فریغی از این مال رو شما بدیم به خاضی یک فریغ رو هم شما بخورید. دادن به خاضر این فریغ تو را مضافن البته خیلی رضیم از که آزیشون جواباشون واضح نبودن یه رضا برای استاد که این کار مال کار قاضی هم نبوده این کار رو خود حکام داری انجام میدادن خود حاکم خود چهره عشی رحیس عشیر پس که مثلا یکی تیفوت میکرده اموشی میانده میگفته آه بذاری من متعالی اینا باشم به هم به حاکم میدونم گذاری خیلی خود من تو را قاضی باشه. این نحوه تصرف در اموال ایتام یا تصرف در ودایه این اینجور نمیده که شن قاضی به ما و قاضی هم باشه بایدیه افتا پیش رئیس عشیر شیخ عشیره پودیدیشون میدادم و اجازه میگرستن محسوسا که در یک بخشی از جاهلیت حتی خود زن هم ارث داده میشون یعنی اگر مردی که اوتون کرد زنشه به غیر مادرش زنی که مادر زن رو. به یکی دیگه به ازدواج خود بچه در میمون این احتمال داره که اهم باشه از بخش قاضی خب نکته رو دقت کردیم اختصاص به قضاق نداشته باشه حکام این کار که نصف هموال ایتان رو بگیرن نصف شو بدن اهم بوده از حاکم و قاضی وقت ظاهر کلام و استاد خب بیرن که شما به حاکم میدین اینم جزا رشبت این معلوم نیست مثلا پولی که به حاکم داده بشه مثل پولهایی که الان انسان برای کارهای خودش رو تو ادارات دولتی میده این بحثش بزرش رو باید هم داره امام مفهام یا نیست این پولی که انسان میره به نظام اداری برای کارش کارش بگذاره البته اگر اون نظام اداری حقش باشه, باشه اگر حقش نباشه از جرد دیگه حرامه از جرد مثلا افساد نظام از جرد آنه بر اس و الافی نفسه نیستن. تمام این که اینشالله عرض میکنید اجرت بازی هم رشوه نیست هدیه بازی هم رشوه نیست اینا هم رشوه هم. نه عنوان رشوه نه معلوم نیست نه. البته این بحث که اینا رشوه نیست از همون زمان صحابه هم محرف شده نه او بعضی از صحابه زمین داشتن محل اختلاف بوده در مثلا در حبشه بوده کجا؟ به حاکم اونجا پول میدن که زمینو بگیرن اصلا این بحث به رواسته ما بحث بعضی فکر می کنه تو رواسته ما آمده. که اگر انسان میخواد دنبال حقش بره تو نظام اداری پولی بده یا نره اشته این این مساله هزار سال واقعه شده این کاش صحابی هم درک که denen که از صحابه اسمش رو بردن مثلا تو هم عبدالله مسئولی که نمیگم تو ذهن هست که در حبشه زمین داشته در عربیش مخاطب میگن یه پول بده به حاکم تا نگیره گفتن اینا بهشیبه نیست اینا اشکال نداره. قبل از این بحث بحث نیست بحث جدیدی نیست این که عرشت و عمومنزاله که این ثابت نیست پس روچند شد تا اینجا اشکال سری چیه؟ اشکال سری اینه که لتعکل و من اموال ناز این با مال یکیم و ودیعه میسازه یک فریق رو میده یک فریق رو بخوه این بارشه نیست بس من سکت می این اشکال از قدیم بوده حضر در حقیقت میخوان به این اشکال جواب بدم خوب دقت کنید داره معنی رو باید شد اون نکته فنی اینه که فریغا در اینجا محکوم نداره یعنی یک قطعه بخوریم یک قطعه بزن. نه قطعه ای از مال مردم بخوریم محکوم نداره یک قطعه شما بخوریم یک قطعه شما بخوریم اولا ا فرمودن الحکام القذار این میخواد اون شبهه رو برطرق بکنه اون شبهه چی بود که حاکم حکام اهم از حاکم و قاضیه امام میفردن نه خصوص قاضیه حاکم نیست این همون نقطهی که ما از کردیم دادن پول به حاکم رشوه نیست دادن پول به قاضی برای تغییر حکم رشوه از اینه که امام فکره و سلام السلام امتفکه نتیفه نیست اینی که خیلی قصد رو کنیم مخصوصا قدم ها مخصوصا برای تر زمان سعی کردن یک جوری انتخاب الفاظ بشه که یک لفت داره یک دریا معنا باشه مثلا آیوکوی فرمان رشو همه اگر انسان پول بده به حاکم هم برای اینکه نصف اموالیت همارو بگیره اینم هم رشو هم نصف اموالیت همار به حاکم این لما می نه فکر که سلام ال علیه السلام الحکام شا شد این یک دو اون للتکرلو فریق من انوار نست یعنی نمی که یک این مفهوم داشته باشه، مفهوم ندا آیه معناع آی این نیست، یک مقدار رو شما بخورید یک مقدار رو به قاضی بدین. نااز بی این نیست اصلا تفسیر تفسییر رو این حساب بود. للتکر فریق یعنی تدلو به فریق ال حکانام، و تأکد و فریقا آخر نه امام می فرماد مراده از این تحبیل روایت نه مدهاری بنده از دار اشتباه نشه تفسیر که ما از کلام امام امام می خواد که فریق در اینجا یعنی شما انوال مردم رو بخورید. بخشی از انوال مردم رو بخوری معناش این نیست که لتأکد و فریقا یعنی یک بخش رو به قاضی دادی یک بخش شما بخورید. این نیست مرناج یعنی شما اگر رو به در قضا دادید میا این بخشی از اموال مردم مثلا میگه این خانمال من رو میگه نه مال من, من شوالی به شما به قاضی کل موید به شما حکم میکنه. به این ساختمان بخشی از اموال مراد از بخشی اینه ساختمان بخشی از اموال مردم شما میگه این ساختمان رو با پول خودتون دقیقه که پولی که شما میگین تودلوبه ها ایلال حکام شما از البته آرخوی آخرشان بله ظاهرتون در این که اون پول از مال معطیه این درسته این آخر استظهاریشان درسته شرح کامل ندادن ظاهرش هم همینطوره لا تأکلو اموالکم ببینید اموال داره و تودلوبه ها به اموالکم اون لتأکلو فریقه یعنی بخشی از اموال مردم چون انسان درقل بارشو که همه اموال نمی این مراد آیه مفهوم نداره پس اصل استدلال برای اغالت و این نهوی اغال اصل استدلال مبنی بود برای یک کلمه که ظاهر آیه اینه که یک فریق رو به حاکم می یک فریق شما می یک فریق از مال رو به حاکم می یک فریق از مال هم شما میخورید پس این منطبق میشه در اموال یسام ها و ودایه اینها امام زهره یسام نه ظاهرش این نیست لتأکلو فریقا من اموال ناز. یعنی اداءن یعنم رجال انهو ظالمون تقرد بکنی میدونه که این, این مقدار کافی لازم نیست که ایتان و شعبتی نه این چهر ظالمه از پول خودش و تولو اموالکم داریم و تدلو به ها به این اموالکم اله سلطان لتاکلو فریقا من اموال ناس پولتون رو به قاضی میدین برای اینکه بخشی از اموال مردم رو بخورید تصرف بکنید بگیریم پس بنابراین اصل تصور این بود امام در حقیقت مخواهی بفنید خیلی لاتاکلو اموالکم که آیه قرآن فهمون رو ظاهرتون یک قانون مال المتو درست این استظهار درست ظاهرش اینه که اموال خودتون رو به باطل بهشون مصرف نکنید و تو لو به اهل الحکام و تو دلو به رایر اموالت کو لذا من احتمال میدم مراد امام سلام الله از با این اجمالی که آوردن مراد جدی امام باشه که این آیه اصلا مربوطه به امکام نیست این یعنی اگه مراد از ایتام این باشه مراد این باشه نصف مال یکیم شما میخوری نصفش به حاکم میدی این نیست اون نصفی که دلیکا به حاکم میدی مال خودتونه. اگر در مورد ایتام هست شما در حقیقت از مال خودتون به حاکم میدی مثلا فرض بده 2 میلیون تومان به حاکم میدی تا حاکم حکم کنه ایتام پیش شما باشه 5 میلیون تومن بهتون گیرشون میاد شما از اون مال که به حاکم نمیدی تو ما شما نیست که ظاهرا آیه میگه اگر هم میخواد مال یتیم رو شامل بشی اینجوری شامل میشه از مال خودتون به قاضی میبین تا انوال مردم رو مصرف بکنیم تا انوال احسان مصرف بکنیم پس ظاهر آیه مبارکه اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه فکر میکنم تا حدیثیاتی روشن شد اگر این روایت سنش بد نیست اگر این کم از بد نیست رزا سنش بد نیست اگر ما باشیم و ظاهر نراز مبارکه اصولا حضرت رضا الله داره آیه مبارکه رو به رشته تفسیر کردن اون مراد جدی اینه لر قرآن یعنی قیدت برن اگه شما با این کارات با جمله از مال مردمون نمو خیلید پارش میکنیم باردگری کنیم چرا توضیح باشه محشی از اعمال مردم رو به این ترکیب تعلق می‌گیره. خیران من پس بنابراین اگر ما باشیم با این تفسیر دوم و خب اون اشکالی که آی کوی فرن و علی اشکال این تمام اون اشکالات حل میشه در حقیقت حضرات بخواهم بفرمایم که اولا یک آیه حکام شامل حاکم و سلطه اجرایی میشه، مخصوص قضات دو مال جایی که شخص و صاحب مال خودش به قاضی میره درن در حرام میدونه که باطلم هست برای اینکه قسمتی از مال مبعثی که یک مال مردم قسمت یعنی مال مردم رو تملک میکنه و بدانه که خودشان ظالمه این شما خواب با این تقلبشون خاص چیز اون کام داخل اجرای احکام شامل نه نمیشه حالا یه چیزی شما از مال خود ایشش رخ بده به این که افراد مرقوم یک حالا اون چه فرقی میکنه تا ظاهرش اینه که ظاهرش به نحوه بهش است که قاضی به نحوه سلطه اجرایی میتونه این کارو بکنه اما ظاهرش اینه که میخواد یعنی میخواد اینطور بگه میگه من حکم قانونی گرفتم قاضی به نحوه من حکم کرد ظاهرش اینطوره و بر ضد نوبه های حاکم نکعقلو میخواد امام تو مخواد اما مخواد شما میخواین تصرف بکنید میخواین تعلق بکنید اموال رو با این ترتیب با این ترتیب میشه این که ثانوی قضایی انجام میشه قاضی من توضیحی هست. اون غیر قاضی در مثل مواردی است که مثل ایهام و اینهاست. اما در جایی که خصومت غالبا میگم اگه خصومت خاصی باشه. نه لا در مثل خصومت من میگم این ساختمان مال منو میگه نه مال من اینو غالبا میگه قاضی میمونه پیش حاکم میمونه. چه حاکم؟ در ساختمان و تنازع باشه پیش قاضی میمونه. پس این به اذن الله تعالی تا اینجا روشن شد که طبق این تفسیری که از مانوزه علیه السلام وارد شده این آیه مبارکه ناظر به رشوه و بن که شاید امتراب از اموال ایتام و ودای ادفشی باشد لاره خوبیه همه ازاله و که احتمال داره که اصلا خاص به باشه که ظاهر تفسیر های مبارکه هم هم اینطوره خب همیه علم و رجل انه و ظالم. پس دلالت روات هم سندش بد نیست قابل قبوله و مشکل خاصی نداره که انفرال شیخ توسی هست مشهور نیست در مسادر مشهور ما نقل نشده و به هر حال میشه قبولش کرد و مشکل خاصی نداره. این راجع به روایت اجمالند و اما با قطع نظر از روایت لعلا تأکلو فریقا من انبال ناست این لام لعلا علت برای چیه این بحثی که دوزه ازگرده این علت است برای و تلو ها ال که الام از ظاهر کفیر امام این فهمیدیم. یا این علت است لا تعکول و اناممالکن بینکن بل بااصل اصلاحمل روماییم. اول آیه ماکن لا تعک و انالکن بین بل این حکم آاد شد؟ اون لام، لا تاكلوا این علت برای اینه لا تاكلوا چرا تاكلوا خیف من اموال ببینید آیه مبارکه در حقیقت علت این که عقل مال و لذا کلمه طریقا که سید بزرگوار اشار فرمودن این معنا روشن میشه کلمه طریقا لا تled کنو اموال کن بینکن بالباطر تأموال و چونه از روی کلمه اموال با بین متعلق به انته شدن هم اموال بران مف� به اسطلاح مفوول به اصلاح مفوول و هم به عنوان به اسطلاح مفت به و هم به عنوان بینم که ظرفیت داره این معنی لا تکنوه اموال کن بینکن بالباطر این معناش اینه که شما در مبادلات اجتماعی تو مبادلات باطل انجام ندید لا ترکل و اموالکن بینکن بل باطل چرا؟ چون اگر باطل آمد لا بلای این مبادلات شما اموال مردم خورده میشه چطور اولی مراد جامعه است لا ترکل و اموالکن بینکن دوممی هم لترکل و اموال ناسب الاس این هم میشه حالت اجتماعی یعنی به عبارت دیگر معنای آیان اینجور میشه اکل مال در مبادلات اجتماعی به باطل خورده نشه تصرف نشه تصرفات باطل در مبادلات اجتماعی تصرفات باطل نباشه چرا؟ به تأکل و فریق من اموال ناز به لعظ چون وقتی باطل آمد همه با هم شریف میشه این معامله شریف باطل اون بی باطل خصومت باطل اینها وقتی که باطل درش مخلوط شد شما در حقیقت در خانه خود رو میخوریم در حقیقت انوال مردم توش مخلوطه لتأکل و فریقم وقتی باطل آمد در جامعه لا و خب خب کل و انوال بین بینکن به الباطل خب به همین چرا ده لتأکل و چون اگر این کار کردیم منجر میشه به اکلمال به باطل به ازم نه، نه، چون لا،, لا آمده علت برای لاست ولذا لا لا اللا معناه میکنه لتاکل و فریقم من انبال اقناس به اس وقت اینجا فریقه هم دیگه معنا روشن میشه چون شما وقتی تو جامعه ببین تو جامعه تصور کنید که معاملات باطل رواش پیدا بکنه پس توی معاملات باطل در اصطلاح دینی ما شامل مواد هم میشه در اصطلاح اجتماعی غرب الان شامل مواد نمیشه خالبا مثلا بین ما خود قمار هم باطل، دوستی هم باطل این جور چیزها، شراب هم باطل این معاملاتی مثل شراب در اصطلاح باطل نمیشه. فرض این خندی باطل نمیدونن، میته باطل. میگه اگر در جامعه این باطل‌ها رواج شده کرد شما وقتی یک مالی رو مصرف می‌کنید، خوب دقت می‌کنید، یک لباسی که می‌خرید، چون باطل تو جامعه بوده، در جامعه. وقتی باطل بود شما انوال روی که پیدا می کنین درش همش قسمت های از مال مردم هست اون لباستون لتر که بفریق هم من انوال نازو به اون فرشی که روش نشستی ماشینی که سوارش میشین خونه ای که می خرید یعنی به عبارت دیگر اگر معاملات باطل در جامعه رواشتونی مبادلات انوالکن بینکنون مبادلات اون نتیجهش این میشه که شما در دیدگی خودتون قتیاتی از نکته عام که ایشون سوال فرما، این, این تفسیر دیگه روشن میشه. قتیاتی از اموال مردم رو به گناه، گناه این در واقع در راه قانونی نه. ممکن است در این دیبات شما 5 قسمتش مثلا حلال باشه، 6 قسمتش مشروب باشه، ده در قسمتش درست باشه در این خطا به اصطلاح این طور نیست که باطل صرف باشه. و نه حق صرف باشه. لتاكلوا فريقا من اموال الناس بر اسم این لتاكلوا ان لا تاكلوا اموالكم بینکم بالباطل <تصفيق> برای اینکه اگر شما باطل در مبادلات اجتماعی آمد یکی از این باطل ها مناقض نداره که تو تفسیر عزرازا عبادات رشوه باشه اگر باطل آمد در مبادلات شما خیانه تو اموالتون ده هزار مال خودتونه اما ده تا رو طریقا من هموارنداست. وقایع نمی‌تونه. هم تقریبا یعنی وقایع حدوداً یعنی یعنی تقریبا ما به ش... بال شما وقایع باشه که یکرت تبالی یکلهم ادوان و حزن و فلکت و آلات فرقام. علیه همان لدول الموت و الرمان. فبرابر این این احتمال دیگه. و سر این که ولات و لبهای در حکام هم تکرار نشده همینه میخواست در آیون بارکه تودو و هر سو بر بکنه یعنی ادلاع ادلاح حکام یکی از مصادیق مبادلات باطله مبادلات باطل تو جامعه نباشه یکی از مصادیقش هم ادلاع بالانواد الحکامه اگر مبادلات باطل در جامعه شد نتیجه چی میشه به تحکلو فریق هم من اموال نازو بر اموال گناه اموال گناه ها آلو تو زید شما بارد میشه بخش هایی از اموالی که در اختیار شما در اینقدر بخش هایی از اموال مردم هم. این سر تأکولی همینه کلمه فریقه هم دکار برده شده چون وقتی مبادلات باطل شد شما دقیقا نیم چه این لباس شما چی مقدارش باطله برست رو جامعه برم کنه ثنثهایی از اموال مردم در لباس شما هست در ملک شما هست در روشن مح... چیشو میکنه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل این و طلبه های در بکام چون عین همون لام تکرار نشده و به عنوان بیان یک مثال بارزه که در جامعه پولی که به قاضی داده میشه اینم جزء اموال مبادلات باطل اینم جزء مبادلات باطل خب چرا لا تاکلوا ذ کاکلو فریغا من انبار الناس ولعزم بله. انتم تعلمون چون وقتی مبادلات باثه حالا مبادلات باثه به اشکال مختلف ایمار باشه سفاحت باشه معاملات قراری باشه شاید مطلع باشین یکی از واهی که در قرق خیلی افراد به اموال عجیبه معاملات قرری چون سه ایمار باشه هیچ چیزی معنی مثلا این قماش در هزار سه توش 200 سال دره ممکن توش 500 سال عمر بیزاره این معاملات قراری خودشی که از مزنه جایی که انسان اموال تراوا این آیینوارکی ناظره بینه شما از راه این اینجور کارهای باطل با این مبادرات باطل خب روشن شد اموال جمع نکنید چون وقتی با باطل شد خواهی نخواهی این اموال مردم و اموال شما هست نصر کلو خریق من اموال ناسه به در از وقتی هم روشن میشه ترکلو هم روشن میشه سر اینکه لا تحرام نشده روشن میشه سر که این چرا لان اینجا آمده تمام یک محکوم آم می میکنه در این حالی که شامل رشوه هم میشه مراد مبازلات مبادلات باطل انهای مختلف در مبادلات باطل هست اگر مبادلات باطل شد شما تأخیب و فریقه من انبال ناس و و این کار درست نیست و الله علیه. پس آیه مبارکی درازه بر پشید تصدیق ورد داره لطافه یه بقیهش این در روایات و استظهار کلمات لغاین فعنده این شده.